خانش توسط بنفشه این داستان حوله سهرامیز یکی بود یکی نبود غیر از خدای بزرگ هیچ کس نبود دختری جوان و زیبا به اسم کیکاکو بود که توی یکی از روستاهای ژاپن زندگی میکرد. او خدمتکاری یه خونه بود. خانم اون خونه یه زن خودخواه و بداخلاق بود. او از صبح تا شب از کیکاکو کار میکشید و اجازه نمیداد حتی لحظه ای استراحت کنه. یه روز خانم خونه تصمیم گرفت برای دیدن مادرش به ده بغلی بره و اون روز رو با مادرش بگذرونه. وقتی کیکاکو این خبر و شنید خیلی خوشحال شد. با خودش فکر کرد: میتونم آرزوی دیرینم رو که دیدن کشیشه برآورده کنم و برم به دیدن کشیش. به محض اینکه خانم خونه از در بیرون رفت، کیکاکو هم کارهای روزانش رو انجام داد و رفت به دیدن کشیش. کشیش به اون دختر زیبا که خیلی ضعیف و خسته به نظر میرسید یه نگاهی کرد. بعد براش دعا خوند و یه مقدار کلوچه برنجی بهش هدیه داد. کیکاکوی نهیف و گرسنه از دیدن اون همه شیرینی انقدر خوشحال شد که بدبختی و ناراحتیهاش فراموش کرد. اونا رو برداشت و با خوشحالی به طرف خونه برگشت. توی راه یکی از کلوچه هار خورد بقیه رو هم زیر بالشش پنهون کرد. یه روز خانم، اومد و بالش کیکاکو رو بلند کرد و کلوچه ها رو دید. با عصبانیت از کیکاکو پرسید اینا رو از کجا آوردی؟ کیکاکو وقتی زن رو اونقدر خشب از ترس لرزید و حقیقت رو گفت. خانم بهش دستور داد که فوراً بره پهلوی کشیش و همه شیرینی ها رو بهش پس بده. دختر اندوهگین و ناراحت برگشت پیش کشیش و رفت و ها رو بهش پس داد اما فکر میکنین چه اتفاقی افتاد کشیش بدون اینکه هیچ سالی از دختر بپرسه بهش گفت خیلی خوب حالا که خانم تو اجازه نمیدی از من خوراکی قبول کنی منم دلم میخواد این حوله رو بهت بدم حتما به دردت میخوره کیکاکو با خوشحالی هوله رو گرفت و به خونه برگشت اونو با دقت زیر بالش خودش پنهون کرد و مشغول کارای خونه شد روز بعد کیکاکو مثل همیشه صبح زود خسته و ناراحت از خواب بیدار شد هوا هنوز تاریک بود اون صورتش رو شست اما دست و صورتش رو مثل همیشه با گوشه لباسش خشک نکرد چون هوله داشت رفت و از هولهش استفاده کرد و نوگهان احساس آرامش خاصی بهش دست داد. خستگیش از بین رفت. از اون روز به بعد همیشه منتظر بود تا صبح بشه و او با اون حال صورتش رو خوش کنه. او از روزی که با اون حال صورتش رو خوش می کرد هر روز زیباتر و زیباتر می و چهرش می درخشید. او دیگه اون دختر رنگ پریده و ضعیف سابق نبود. و همه متوجه این همه تغییر شده بودن یه روز یکی دیگه از خدمتکاران خونه نتونست استاقت بیاره و ازش پرسید کیکاکو راسشو بگو تو چه کار میکنی که اینقدر زیبا و شاداب شدی کیکاکو همونطور که با عجله کار میکرد با بیتوجهی گفت من من هیچ کاری نمیکنم خدمتکار اونو مجبور کرد تا بره جلوی آینه بهش گفت من اصلا شوخی نمی کنم. تو فقط خودت بیا و خودتو توی آینه ببین دختر از دیدن چهره شادا به خودش توی آینه تعجب کرد چون باورش نمی شد اونقدر جذاب و درخشان شده باشه با خودش فکر کرد یعنی چی باعث این همه تغییر شده ناگهان به یاد حولش افتاد اونو به همکاراش نشون داد و گفت شاید موجزه این حوله باشه دوستش با تعجب گفت چه خوب؟ زن صاحب خونه که گفت و گوی اون دو نفر رو شنیده بود. سرزنش کنان گفت. مگه بهت نگفتم که از کشیش یه چیز نگیری؟ چطور جرعت کردی از دستور من سرپیچی کنی؟ شما دو تا ویراج تو این خونه فقط راه میرین و تنبلی میکنی. خدمت کار دیگه یه خونه گفت. خانم اون فقط داشت این حوله رو که از کشیش گرفته بود به من نشون میداد. زن با خشونت گفت. چی شده که کشیش یه روز در میون اونو هدیه بارون میکنه دختر خدمتکار پاسخ داد خانم ولی این یه حوله معمولی نیست شما میتونید سهر و جادوی اونو توی صورت کیکاکو ببینید زن از قبل متوجه چهره زیبایی کیکاکو شده بود و بهش حسادت میکرد اما علتشو نمیدونست او برای اینکه به راز حول پی ببره اونو از دست کیکاکو قاپید اون زن سن زیادی داشت و همیشه آرزو میکرد زیباترین زن دنیا باشه. شب که شد بهترین لباس کیمونوی خودشو پوشید و صورتشو شست و با اون حول خوش کرد. و بعد به امید اینکه که چهرش جوان و زیبا شده به انتظار شوهرش نشست. وقتی شوهرش به خونه اومد به جای اینکه از زیباییش تعریف کنه اونقدر خندید که همه اهل خونه دورشون جمع شدن. هر کی وارد اتاق میشد و به چهره‌ی اون زن نگاه می کرد، نمی نمیتونست جلوی خنده‌ی خودش رو بگیره. زن بیچاره که دلیل خنده‌ی اونا رو نمیدونست رفت و خودش توی آینه خودش رو دید. اما از وحشت قش کرد، چون صورتش به جای اینکه زیبا شده باشه، تبدیل به صورت اسب شده بود. این بود عاقبت داستان زیبای ما. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام ای نشانی وبلاگ ما m e h r a